جلسه درس قواعد فقه و سیاسه جلسه یازده بیس پنجه هشته هزار و چهار امام بحث حفظ نظام وان بسم الله الرحمن الرحیم بحثی که جلسه قبل داشتیم اگر فاصله افتاد فکر میکنم یه سری معرفی منابع داشتیم بعد از اون بحث روش ثبات منابع خب ما یک محدودیت وقتی هم داریم مجبوریم بعضی موارد رو که مهمتر هست با یه گذینشی تره بحث بکنیم در این جلسه ای ما می توانیم حالا اشارات من داشتم که قبائد رو چگونه توان در نظر گرفت یک سری قبائد عام و در واقع فراگیر رو گسترده داریم که برای کل فق قابل تمسک و تطبیق هست و اسم اونها رو می توانیم مثلا قواعد عامله بگذاریم که ناظر همه ابواب خاص مثل لاضره و استرار و اکراه و و سایر موارد یه سری قواعد هم مختص ابواب خاصه اگر هم ابواب رو ما دسته‌بندی کلیتری داشته باشیم یک سری قواعد عام مربوط به اون هیت ها هم می توانیم پیدا کنیم مثلا اگر بر اساس دسته‌بندی مبتنی بر میار رابطه و ارتباط و تعامل یک با خدا یه هیت یک ساحتی می توانیم داشته باشیم ساحت تعامل با خدا یک سری ابواب فقی زیلوم میتوانه بگنجم ساحت ارتباط با خلق ابواب مختلف فقی میتوانه در اون بگنجم قواعدی که برفرض ناظر به همه ابواب مربوط به یک ساحت باشه از این ساحت های پنج گانه تعاملی خب ابواب قواعد مشترکی میتوانیم لیست کنیم ساحت تعامل با خلق الله، ساحت تعامل با خود مجموعه ابواب فقهی رو میتونه در بر داشته باشه و قواعد عامی مربوط به هر یک از این چند ساحت رو ما میتونیم رصد کنیم. پس قواعد فراگیر و شامله برای کل ابواب فقه، قواعد دست دوم مربوط به یکی از چند ساحت کلیه مربوط به فقه. قوائدی قواعدی رو هم می توانیم به عنوان قواعد مختصه یک باب ما در نظر بگیریم. زیر مجموعه یک باب هم می توانیم فصولی بخش هایی داشته باشیم. احیاناً بعضی قواعد هم ممکن مربوط به اونها باشه. خب یکی از یک زاویه دید هم ما می توانیم برای بحث فقه نظامساز در نظر بگیریم خب طبیعتا مباحث و قواعد مربوط به فقه و یکی از اصلی ترین و مهوری مواردی خواهند بود که در روی کرد فقه نظام ما میتوانیم برجسته ببینیم و برجسته بدانیم برای دستبندی همین ها هم ما میتوانیم شکلهای مختلفی برای تقسیم قواعد مربوط به فقه و سیاسه داشته باشیم که در آنها روی کرده فقه نظام ساز طبیعتاً بر خواهند داشتیم یکی از اون قواعد، لی... مختلف، قواعد مختلف که تا لیست های در میشه گرفت تا برد چهل پنجا بلکه طبق لیستی که ما در نظر داریم تا سد و قاعده هم می توانیم در نظر بگیریم قواعدی که البته مربوط به ساحت های مختلف فقه و و سنخ قواعد مختصه باب فقه و اگر ما به ناظر به فقه و رو لحاظ بکنیم یک بخشش میتوانه ناظر به مباحثی باشه که مربوط به فضای حکومتی لزومن نیست حتی قبل از تشکیل حکومت یا در جایی که حکومت اسلامی نیست حکومت‌های دیگر هست و یه مقداری هم نزدیک میشه به فقل اجتماع می‌توانیم بحث قاعده بحث حفظ نظام رو ما لحاظ کنیم خب اینجا ما در واقع یک مقوله می توانیم داشته باشیم به عنوان مسلحت تأسیس نظام ابتدا شکلگیری نظام حالا یا مرحله بعد حفظ نظام مرحله بعد توسعه نظام می توانیم از مقوله حفظ نظام صحبت کنیم و اون رو به عنوان یکی از مسائل و رسطه هم در نظر بگیریم خب اگر حفظ نظام یکی از اون مساله عالیه اسلام باشه ما با مسئله وجوب حفظ نظام مواجه خواهیم بود پیش از اونم مسئله تأسیس نظام ولی اینجا این مسائلی می توانیم در مورد این مورد از مسئله منود در واقع مصادیق مصلحت هم سوال های तह کنیم آیا وجوب حفظ نظام در قالب چه سیغه های تعبیری می تواند مورد اشاره قرار بگیره خب عنوان مشهور حفظ نظام یک عنوان نزدیک دیگه بحث اختلال نظام داریم حرمت اختلال نظام از این طرف وجوب حفظ نظام از اون طرف حرمت اختلال نظام نکته دوم اینه که خب مفاهم مربوط به بس مفهوم نظام چیه؟ نوع نظامی مد نظر می توانه باشه؟ در بحث سیغه های تعبیری و از ای، تفکیک این دو مقوله به نظرم خیلی مهمه که ما فقط مفهوم حفظ نظام نداریم مفهوم اختلال نظام هم در نصوص دینی مورد توجه قرار میگیره گویا اوقات مفهوم اختلال نظام هم محدود به در بحث مفهوم محدود به اختلال نظام هم نیست عنوان‌های دیگه هم مثل اختلال نظم هم ما می توانیم پیدا کنیم مثلا مرحوم میزا محمد آشتیانی در کتاب القضا جلد یکشون میگن حفظ نظام و اختلال نظم پس یه حفظ و نظم یکی اختلال و نظم یه موقع میشه بگیم اختلال و نظامی یه موقع میگن بگیم اختلال و نظم مرحوم نوزا حسن محمد حسن آشتیانی که کتاب القضایشان خیلی شهرت داره و کتابی بسیار قوی است یه در جلد دومشون هم این تعبیر رو دارن ما ملاحظت ما دلالا وجوبه ترک مایوج اختلال نظم. حالا اینجا هم مفهوم اختلال و نظم داریم پس اختلال و نظام داریم اختلال و نظم که به کار رفته اینجا از جهت مفهوم حکمی هم این تعبیری که خواندم ورده می توان مد نظر شما قرار بگیره وجوب ترک مایوج اختلال النظم یعنی ما احکام و مسائل مورد نظر در مورد مربوط به حفظ نظام و اختلال نظام رو هم هم از حیث وجوب هم از وجوب حفظ می توانیم داشته باشیم هم اگر به اختلال نظام برخورد کردیم کردین مخفومی بانده ترک مایی اختلال نظام هم داریم یا سال مفاهیم مثلا مستقیم میگیم حرمت اختلال نظام یه موقع ممکنه بگیم نه اختلال نظام یک نتیجه هست بگیم حرمت مایوجب اختلال نظام بعد فعلش رو ترکش رو بگیم خب مفهوم حفظ نظام هم تعابیر مختلفی براش به کار رفته مثلا توقف نظام هم گفته میشه حصول و نظام هم گفته میشه مثلا مرحب وحید بهبانی در الفواد الحائریم این تعبیر رو دارن حالا مقدماتش رو کار نداریم در مورد حاکم شرعه که اشاره میکنن به بحث مناسبش و میگن این مناسب چهیه چه میماینتظام به این امروز معاده والمعاش للعباد همطور میرن سراغ بحث حکمش آخر یه جای استدلال که میخواد بیارن یک قهون این منصوب من المعصوم علیه السلام این حاکم شرع منصوب از طرف امام معصوم چرا؟ ولی اندم ببخشید قبلش میفرم بحث این است که مشتهد باشن یا مقلد بعد در استدلال برای این مقوله اشتراک علت رو بیان میکنن که میگن آقا ام لا یک کنون قلد و اشتراک علت و یک کنی منصوب این یا استدلال یا علت مشترک دارن منصوب از امان علت دوم برای این بس که مشتهر باشن یا مقلد باشن مقلد هم مقلد چه کسی باشن مفهوم حصول و نظام رو به کار میان ولی انه حصول نظام لا یکونه الا لا یکونه الا به ظاله ولی انه نایبول معصوم علیه السلام اینجا نقطه مهم اینه که بهش استبلال کردند، کردن مفهوم حصول و نظام پس یه موقع ما میگیم تو فضای امروزی میگیم تحسیس نظام بعد میگیم بعد از تحسیل نظام حفظ نظام اینجا الان به جای مفهوم تحسیس نظام مفهوم وید بهبانی حصول نظام رو به کار بودن و تعبیر مشابه مثلا تعبیر دیگه حفظ نظام و مایه توقف علیه تعییش شد بنی آدم و نظام العالم اینجا میقداری نظام هم معلوم میشه نظام العالم تعییش بنی آدم یعنی کل اون ساختار اجتماعی تعبیر دیگه و توقف و نظام العباد و البلاد نظام العباد و بلاد این دوتا در تعبیر مرحوم ناینی به کار رفته در منیت التالب. خب بحث های دیگه ام مفاهیم دیگه ام طبیعتا می توان مورد توجه قرار بگیره مرحوم میرزا جوادق تبریزی رحمت الله علیه به بحث سیانت از این توبه سیانت از نظام معیشت عباد و حفظ امن بلاد که این رو با مفهوم حسبیه یکی دانستند. ایشان بدانید که جواد جوادها تبریزی در بحث استطلاع برای ولایت از باب امور حسبیه میپردزن اما امور حسبیه رو وسیع میدانن شامل امور حکومتی و همه امور میدانن اینجا هم الان تحبیل شدنید نظام معیشت عباد و حفظ امن بلاد خب در مفهومش هم زیقشوهایین ها با این مقوله حسبی. امور حسبیه اکسان دانستند. خب در قابلشون اینه ازاکان المجلس المذکور من المجالس استشاری المطلقه به تدبیر شؤون المجتمع و مسالههی و حفظ نظام البلاد علا طبق قوانین شریع فحاظا من الامور الاسوییم از جهت محتوایی هم تعبیر درقا دست تدبیر شؤون مجتمع و دستش حفظ نظام بلاد وردن تعبیر دیگه میگن به حاض حوللایت ثابت لفقی انجام شرایط متس دیدلمر مباب حسب از باب حسبه این ولایت برای فقی ثابته. بعد خب حپوزی که برای این مورد میدن چیه میگن حورلتی لابد تق هافل خارجیم و یا تو قع علی ها نظام و معیش عباد و حفظ امل بلات، خب آقا اینه که شما میگید از باب حسبه میگید این ولایت برای فقیه حاصله خب این دایرهش چه قدره میگه اموری که باید در خارج متحقق بشه الامور اللتی لا بد من تحقق خارج خب ویژگی دیگش چیه این لاغیر از لزومیت تحقق این که نظام معیشت عباد و حفظ امن بلاد و تکیین المؤمنین لقت عدل اعدا و دفعیل من عرای هم اینا این اموری هست که توقف داره نظام مع عباد و اینها بر اون توقف داره. در واقع امور عمومی امور اجتماعی سیاسی رو خلاصه اینجا محور مقبول نظام می دانند نظام معاشت عباد نظام حفظ امن تمکین مؤمنین پس مجموعه امور اجتماعی سیاسی که برای تدبیر جامعه نیاز هست مفهوم هف... نظام براش به کار بردن خب این مفهوم اختلال پس دوگانه داریم بعضی موقع اختلال نظام اصول نظام خود نظام چیه مثبت و منفی نظام عباد در کنار این مفهوم و این سیاق تعبیری گایوان ما تعبیر مشابه هم داریم مثل صد باب معاش اختلال اساس اصاس ونی آدم لزوم هر جمرج اینا بغل دست این مفهوم اختلال نظام اومدن یه جور جنبه میتوانیم تفسیری بگیریم مثلا منواشتیانی که عبارت یه عبارت اینطوری دارن جلده یکشون لالا یلزم اختلال و نظام هم و صد و باب معاش هم وقتی این دو تا با هم میاره یعنی میگه اختلال نظام نباید حاصل بشه صد باب معاش نشه پس نظام یه جایی دیدیم میگه نظام العباد نظام البلاد یه جایی هم به صورت تفسیری واب عطف اومده و معقوله صد باب معاش آمده در کنار اختلال نظام دوباره همیشان میگه يلز لعلا یلزم اختلال و نظام عالم و اساس و عیش بنی آدم نظام عالم اون مجموعه امور که به هم پیوسته هستند و اساس عیش بنی آدم تشمیدند با واقعی که او اختلال و نظام عالم و اساس و عیش بنی آدم این نباید مختل بشه پس این اساس عیش بنی آدم یعنی همون نظام عالم این نظامی که اینجا گفته بشه تعبیر دیگه دوباره دارن الله و معله انیقال من جهت لزوم اختلال وال حرج اختلال نظام پشت سرش چی آمده نظام اینجا نیماده ولی خب مرات همینه دیگه میگه که اختلال نظام نشه و هرجمرج نشه پس هرجمرج یعنی چی یعنی اختلال نظام پس این نقطه اول که در مهمموم شناسی و سیغه های تعبیری هم حفظ داریم هم اختلال داریم تعابیر نزدیک به هر کدام هم داریم حصول نظام داریم توقف نظام داریم و موارد مشابه نکته دوم اینی که متعلق نظام در تعاویر فقهی چه چیزهای آمده چند مو... چه موردی است آیا نظام جامعه است نظام عالم نظام سیاست چیه حالا در لابلای یعنی این بوایس مواردی رو که من عرض کردم جلب توجه شما شد اجمالا داریم نظام معاش و معاد گاه اینطوری به کار رفته نظام معاش و معاد به دست هم آمده مثلا محکوم سید عبدالعلا سبزواری در کتاب شریف محظم العقام که در این کتاب بحثای بلندفقی هم خیلی زیبا آمده ایشان میگن و یدور علیه نظام و معاشه هم و معاده هم موضوع در موضوع اتمینان چیه؟ که میگن عبارت از قطع عادیه و این قط و این اطمینان نزد اغلا معتبره بعد میگن که اطمینان محور نظام معاش و معاده پس نظام الان متعلق هم یعنی دنیا هم معاد بعضی موقع تعبیر انتظام یا حفظ نظام دین تنها هم آمده مقابل حفظ نظام دنیاوی و معاش بعضی موقع در عرض هم آمدن بعضی موقع هم در مقابل هم مثلا مرکوم شیخ خادی تهرانی مشهور به شیخ مکفر که در دو تا شیخهادی تهرانی داریم یکی در تهران بودی یکی در نجم ایشان دیدگاه های فقه و اصولی خاص خودش رو داشت کتاب شریفشون محجل ال... محجت العلماست که به نظرم خاطرم از در نرمان اصول هست اینجا مثلا در مورد خلیفت الله صحبت میکنن خلیفت الله اگر طبق مثلا علم الهی وحی و الهام اینها عمل بکنه میگن لم دین تزم امر دین بس تل امر معاش المؤمنین اگه بخواد علم غیبت عمل کنه میگه امر دین دیگه انتظام نخواهد داشت و امر معاش المؤمنین مختل خواهد بود پس این انتظام به دین میخوره به معاش هم میخوره خب این هم پس مح... این رو در واقع باید بگیم وسیل ترین معنای نظام و متعلق نظام نظام معاش و معاده و از مقابل هم انتظام و نظام دین مقابل نظام دنیاوی و معاش نکته دوم این که در اکثر موارد من طبق استقرایی که در کتاب های فقهی داشتم فقهی و اصولی امدتا تعبیر نظام ناظر به خلاصه نظام حاکم بر کل جامعه و نظام اجتماع و نظام عالم ناظره <تصحن> <تصحن> که حالا بعضی مساطیق رو میشه کنم <تصحن> مثلا من سبزباری در محذب الاحکام تعبیر نظام اجتماع رو دارن که اقلام متحفظ بر این هستن دو رعایت میکنن حفظ اجتماع رو الاقلا المتحفظین الا حفظ نظام المجتمع یشتنگونه فلان اقلایی که معمولا در سیره این هست که نظام اجتماع رو حفظ میکنن مثلا از فلان چیز اجتناب میکنن پس تعبیر چی دارن؟ اجتماع دور. البته این رو اسام در عربی معاصر نظام المجتمع ما در فارسی میگیم جامعه در عربی میگیم مجتمع. اجتماع همون معنای مستری داره به کار اینجا طبیعتاً اگر با تعبیر عربی روز بخوایم بگیم ما بعد بگیم نظام المجتمع مرادشون هست یه موقع میگیم ان نظام الاجتماعي. خوبی یه حرفی اما اینجا مضاف مضاف الی طبیعتاً باید می‌فهمیدن نظام المجتمع تو فارسی وقت می‌شه بگیم نظام جامعه خب پس اون معنای اول که شامل آخرت و دنیا بود وسیع‌ترین معنای نظام معنای محدودتر یا کاربرد محدودتر اینه که برای نظام حاکم بر کل جامعه نظام المجتمع و به تعبیر غیر درست نظام المجتمع یا به تعبیر دیگه مرحوم نائینی دارند نظام در واقع حفظ نظام عالم خب اینجا نظام عالم یه جوری با تو بواسی که اینجا هست می توانیم بگیم که نظام جامعه من نظر ملاک و وجود هی و منشه و تعلق الامر به حفظ و نظام تو بحث وجوب و حرمت دیگه و ما یه توقف علیه تعییش بنی آدم و نظام العالم اینجا حفظه نظام و نظام العالم قرینه این یا توقف علای تحییش و آدم یعنی جامعه انسانی حالا ممکنه به فردم بگیم ولی دیگه برای فرد که تعمید جامعه به کار نمی برنی. در مورد دیگه هم میشه این مورد رو بگیم در محوم ماشدیانی که عبارتی خواندیم لالا یلزمه اختلال و نظام العالم و اساس و عیشه بنی آدم پس اینجا هم میشه بگیم در واقع بر اساس این وابعتی که آمده نظام العالم و اساس و عیش بنی آدم اینجا هم مراد نظام جامعه است من این تعبیر رو که ارز در اکثر موارد نظام جامعه است خب این توان منشه سوالی هم باشه که نظام سیاسی یا نه چی اون حالا بستش جده بنابرای این با برخی از این اشارت میشه بگیم پرکار پر کار مفهوم نظام نظام جامعه است البته بعضی از آنی که گراش های کمی اصلاح طلبانه دارن در فضای حوزه یا غیر حوزه این نکته که ما عرض کردیم که گفتیم اکثر موارد مربوط نظام اجتماع بوده این روی کمی مورد سو استفاده و یا سو برداشتشون شده یا سو برداشت یا سو استفاده اون چیه درسته در اکثر مواردیم طور بوده ولی خب باید اختزای فضای رای جفق و حصول رو بگیریم که به هر حال جامعه علمای شیعه برخوردار از نظام سیاسی نبودند که به این طرف کشیده بشن طبیعتا یه بحث جدی اینی که نظام جامعه رو باید بگن ولی معنیش نف نیست که ما مثلا وجوب حفظ نظام به وجود وجوب حفظ نظام سیاسی نداشته باشیم درسته اینجا الان پیش گرفته شده که نظام جامعه باید حفظ بشه نظام اجتماعی مورد گوه این پس توی این معنای دوم مسلم کارور دوم بعد از این موقع این حفظ نظام همسان با یه مقوله مفهوم خاصیه ابقا و بقا و حفظ نوع انسان هاست که خب اینا با حفظ جامعه بیشتر جور در میام مثلا در همین مرحوم آشتیانی یه تعبیر دارن کمافی جمعی الحرف و سنای الواجبه من حیث و توقف نظام علیه بباشد این برای ما براز قبلی فیش اشتوارس کرد مرحوم اطلاع خویی رزبارنو لا تعالی علی خدمت شما کنم در تعبیر فضایی که مورد نیاز و اونها بوده با اشتوامل داشتن حفظ جامعه بوده اما معمولا اونها نظام سیاسی رو که نمی پسند که صحبت از حفظ اون نظام سیاسی بکنند. چرا یه جاهای ممکنه بگردیم. بگیم که مثلا علماء سفریه به کار گرفته بودند مثلا در فضایی که نظام سیاسی رو قبول داشتن بگیم آقا اونجا به کار بردن مثلا بگم پیدا کنیم یا در فضای حتی اهل بیت اون که فرض بگیریم میخوان جامعه اسلامی حفظ بشه این نظام سیاسی موجود هم میخوان حفظ بشه خب ممکنه یه تعابیر اینجوری هم استفاده کنیم ولی غالب حفظ نظام اجتماعی یه معانی خاص هم داریم که با همین هم سازگاره مثل مرحوم اطلاق خویی در کتاب الهدای فلوسو جلسهشون تعبیر حفظ نظام بقاع نو دارن تعبیرشون به صفح بنائات الاغلا کله ها راجعتن اله حفظ نظام و بقای نوع گوی گاد دیدی تو این بحثا بنای استفاده داخل امن می بکنم ایم. خیلی داره راهی به عنوان بنای اوغلا و بنای یاد میکنن ممکن از این جمله ایشان اینو بفهمید بگیم بگیم که این جمله داره میگه که بنای اوغلا اینقدر وسیع نمی‌گیدا بنای اوغل تو هر چی که از بیرون شما از دیدید انجام میدن علما اوغلا انجام میدن اسمونو نذارید بنای اوغلا موارد خاصی بنای اوغلا اون چیه اونجایی که میگه بنای اوغلا همش راجع به حفظ نظام بقای نوعه طول اقلا کلها راجعتون الا حفظ نظام و بقا نو این واقع میتوانه واقع تفسیری باشه نظام چیه؟ یعنی اونجوی که پای نو درمیانه حفظ نظام یعنی بقای نو بشه که حرمت القتل و ظلم و غیر زال کمه ماله و فی نظام العالم پس اینم به طور زمینی از این دیار دستتون بیا که ببینید مثلا حفظ نظام یه جوری با بناات اقلا داره گره میخوره که در رای عمر اقلاییه و بعد از اون طرف اینه داشته باشین گذینه خیلی جالبیه تعبیر هر جایی که صحبت بنای اقلا شد بنای اقلا این از منظر ایشون میگه همه اینا راجع به حفظ نظامه خب حالا ممکنه شما این موارد محدودی بگی بگی که آها این به یه نوعی حفظه مربوط به بقای نو به صورت مستقیم نیست ممکنه به صورت غیر مستقیم باشه یا اون رو تضعیف کنه یا اون رو منحرف کنه ممکنه موقع به فرمایش اشان یه هم اضافه کنیم مثلا بگیم اوها ربا. رباب رباب در ظاهل ات به بناه نو صدمه نمیزنه در ظاهل ات دقل مثل در واقع اشان محدود کردن به این معقول برای یاد نکته مهمه زریفیه. حالا ممکنه بگیم آقا حرمت ربا خب حرمت ربا آیا به بقای نوم گره میخوره؟ ممکنه یک تفسیری بکنیم لوازمش رو لیست بکنیم توصیف موضوع شناسانه بکنیم بگیم آقا اگر ربا باشه چنان درگیری در جامعه به وجود میاد در پودا مدت، میان مدت، دراز مدت که بقای نو رو دار میکنه مثلا فرض بگیریم الان مثلا ممکن اینجور تفسیر کنید اما اینا دیگه تحلیل های ما زی. به صورت مستقیم شاید روا رو کسی اینجور نگیره مگر با اون نگاه خیلی خاص مثلا شما بیاد بگید آقا جنبش چه جا به وجود آمند چون که در مثلا فضای اجتماعی سیاسی آمریکا جدید چند روز پیش یک مستند جالبی تلویزیون نشان میداد خیلی قشنگ بود تم وضعیت آمریکا به صورت نموداری که چهار درصد جامعه عمده الان عددش فراموش کرد عمده ثروت های جامعه به دست اونهاست مثلا ممکن شما بگید آقا ربا یا سایر مفااعیم نزدیک حالا با منظر مفاائیم بگیم مثلا اقتصادی خاص مثل با یا مفاهیم عام دیگه مثل که یه جنبه اجتماعی و حقوقی و نداره مثلا مفهوم بی اینها رو هم بنای اقلا قبول نمیکنه چرا چه کوتاه مدت چه بلند مدت به همون بقای نوع صدمه می ممکن اینجور تفسیر کنیم ولی ظهورش در این نیست که مستقیم به نظرم به بقای نوع مثلا برگرده حالا اینا باز جای تحمل داره که محدود به این باشه یا نه خدمت رو ارز کنم نکات اینطوری مثلا مرحوم آقای روحانی آقای سید محمد روحانی در منطقل اصول خب ایشان خب اصولیش قبیه. حالا ایشان اینطوری میگه سو اننا نرو انه حسن العدل و قبح الظلم ثابتون لو لم يكن مستلزما لإخلال النظام فكيف يقال انه حسن العدل و قبح الظلم من الحکام و به ما تطابقت عليه آره والأغلا حفظا للنظام و ابقان لنو اگر ما بگیم که حسن و بلو بلو میخوام برای تشخیص حسن و قبض یه الله در بیارن خواستگاهشو در بیارن خب آیا اینها به اختلال نظام و اخلال نظام میانجامه نمیانجامه اگر بگیم که قبض ظلم این ظلم به اخلال نظام نمیانجامه اشکال میکنه میگن آخو پس چطوری گفته میشه که این از احکام اغلایی است و به خاطر حفظ نظام و ابقاء نوع ظلم قبیه خب پس حالا این تعبیر یه مقداری فراتر از اون تعبیر مرحوم آقای خویه خب آقای روحانی هم شاگرد برجسته اشان بودن دیگه خب پس عرضم کجا بود؟ داشتیم بحث مفهوم و دایره در واقع متعلق نظام رو میگفتیم نظام جامعه مراده، نظام عالم، فراتر از عالم اینا مراده یه توابیر اینجوری داریم، دنیا و آخره ولی خیلی جا به نظام جامعه و نظام بقای نوع و اینا گره میخوره در توابیر رایج و بیشترین کار برد با این معقوله است. حالا تعبیر مثلا حفظ نظام مساله هم داریم. آه. که مثلا شیخ انصاری در بحث از تضامن ولیت فقه ها مورد اشاره دارند. میگن که در مکاسب و محرم جلد سهازا کلوم و لزوم اختلال نظام المساله الملوته الا الحکام سی اما فیم مثل آزرزدمان نزی شاعفیه القیام به وظایف الحکام ممید دل حکومه یه قاسبانی داریم یه کسی که ادعای حکومت دارن و وظایف حکام شهر رو خلاصه دارن به دست میگیرن تو اون بحثشون میگن که دلی میارن میگن که آه این موجه فلا مسئله که من حال و مندش رو نیوردم اختلال نظام مسالح میشه خب این نظام مسائل هم در واقع مسائل نوعی مورد نظر قاضی هم دیگه خب این پس یه معنا یه معنای کوب یا کاربرد کلی که نظام جامعه نظام مسائل این نظام مسائل هم طبیعتاً رو تو یه معنای خاص معنای محدودتر از اون اوللی خیلی وسیع بود دنیا آخره آخرت دومی بگیم نظام اجتماعی سوال آیا نظام حاکم سیاسی هم میتوان مد نظر قرار بگیره خب بله حضرت امام به عنوان یک فقیه برجسته مفهوم حفظ نظام جمهوری اسلامی رو به کار بیان تعبیرشون رو من بخوام خدمت شما این من تو از استفتاد جلد سه صفحه پونسد و ده من ارز بکنم آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد ادامه شوالا ارز بکنم خب اینجا میشه بگیم چون که تصریح شده خب معلومه متلب در فقه خیلی جاها چون که مقالی حکومت که مطرح نبوده مگر در حکومت های جور یا مگر بگیم حکومت اسلام نظام سیاسی اسلام هم از خلافت و اینها ولو باطل بوده در مقابل حکومت کفار همسایه خب طبیعتا حمایت میکردن از حفظ نظام سیاسی امام علیه علی السلام این نظام سیاسی که حالا اگر ما تعابیر در رابطه پیدا کنیم خب می‌تونه حفظ زن نظام داریم مثلا اون فقره حکمت فکر کنم 29252 نهج البلاغه که حضرت دارن حضرت فاطم زهرا سلام علیه ها دارن در خدبشون نظام الاممه و خلاصه اینها رو دارن خب این اون جاها یا جا متعلق ممكن تصریح شده باشه یه جای تصریح نشده اینجا الان حضرت امام دارن متعلق رو به کار میبرن خب قشنگ مراد مشخصه باشانا فقی هم من اینه ببینن احساس مجاز بودن نمیکنن در آن چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد داخل پرانتس که فعل یا ترکان موجب اختلال نظام می شود هم هسته نظام فرمودن هم اختلال نظام که فعل یا ترکان موجب اختلال نظام شد و آن چه ضرورت دارد داخل پرانتس که ترکان یا فعلان مستلزم فساد است مورد سوم، و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است. پس سه تا عنوان رو دارن به کار میبرن برای حالا موردی که ارزو کار معلوم میشه برس مجلس او ناس پس یکی حفظ آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت داره. دوم آنچه ضرورت دارن عدمش این ها به مستلزم فساته مورد سوم، اونهایی که فعل یا ترکش مستلزم حرج پس حفظ نظام ضرورت حرج این سه مورد رو می فرم. پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت مرکلاه مجلس شورسنی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و این و پس از رفع موضوع خود به خود لعب می شود در این موارد مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یکی از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمایت مجدم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تحضیل شرعی می شود خب یه ها میخوانیم اجازه ای بدن موارد رو قید میکنن حفظ نظام، ضرورت، حرج خب اون مرحله ایه که به نظرم این فقره مربوط به اون زمانی که مجموعه تشخیص ظاهرن نداشتیم اینجا اجازه رو میدن به اکثرت وکلا خب برم که مجموعه تشخیص داریم این موارد طبیعتا منتقل شد به خب من شما کنیم به مجموعه تشخیصی خب، پس میبینیم الان یه تعبیرهای به کار رفت مرحوم میرزا جواد آقا در آن تعبیر که خواندیم حفظ یا اداره نظام البلاد البته در جای دیگه اینو نخوانده اینو در نجات دارن فرمودن که اونجایی که عرض کردم میشوند میگن اون رو به اون دیدگاه وسیعی در اینجا اشاره میکنند بعد نخلیم اداره نظام میکنه این پار هفش قطی هست در سراط نجات جلد یک صفحه شو متاسفانه من اینجا فراموش کردم یادداشت کنم آیه تبدیل زهب و بعض افقه ها اینا الا انن الفقیح العادل الجامل شرط نا ایبون منقه ولی هم السلام فی حال القیبر فی جمی امال نیابت فی دخلان چرا که نیابت در اونها داخل داره ولایت گفتن که داره و الذی بهی اونی که دیدگاه مایی چیه میگن امور نسبیه اما تصریح میکنن که امور نسبیه با اون روی وسیع و الذی بهی ببین دیگران گفتن نائب ولی متعلقش گفتن در همه اموری که درش نیابت داخله فی جمعی مال نیابت فی مدخلون این تعبیر لا به لا فقهای قدیم هست حالا الان یادم می در درس دیگه خدمت شما این تاریخ ویلایت تخری رو اعظم کردم، اونجا چند چندبار این تغییر تکرار شده. اون فباهای قدیم جمعی مال نیابه تفیه مدخلون. یشون میگن چیه دیدگاه ما اینه که آنل هوا آنل ویلایم ولازی نقلبی امور اما حسبی محدودی وسی بنتاق از خود اونا چیه و هیا کل ما اول ما ان شارع یتلو شارون رو واجب میدانه ولی بر مخالفین، مخالف فکر نیست. جزا معمولی نیست که مکلفش خاص باشه ولن یه ایلم و مکلفن خاص از این معلم مثلا متصدی باشه. معلم پدر باشه. مادر باشه. یه متصدی خاص. نه از این متصدی خاص نیست این متصدیش فقیه پس ما در واقع بگیم مکلفی داریم که عهدهدار کل چه امور عمومی، امور خصوصی مکلف خاص داریم این جزء امور عمومیه. عمومیه و منها بل اهموها ادارت و نظام البلاد و تحییت المعدات و الاستعدادات دفاع آنها. ببینه الان اینجا مفتوم نظام بحث ما اینجا بود نظام رو کار بردن نظام البلاد آیا این نظام البلاد یعنی همون نظام اجتماعی یا امور سیاسی هم هست دوش اداره سیاسی جامعه است. این نمیگه که این الان داره گردن حاکم میذاره فقی حاکم رو داره میشه شما مطرح میکنه پس همین که داره یه اردن فقیح میذاره و ما تعلقشم اون رو سیاسیه بعد میگه اهم میشینه اداره و نظام البلاد این تعبیر سیاسیه دیگه و تحبیت المعددات ولی دفاع انا این شد سیاسی دیگه مفهوم نظام رو بر چی به کار بود؟ برای نظام سیاسی ف نهها ثابت اللفقی جامل شرای دیگر ج فی تحصیل اعله کتابنا ارشاد و طالع و قذا اللفقی قذااف مرافات و فصل قطات و لا عالم این تو کتاب فاییی اوستررات و نجات جلد یک حالا متصن میشم در چه صفحه ای خب این نکته بسیار مهمه پس یا ما خودمون درسته عرض کردیم. که اکثر اکثرا مفهوم نظام برای امور اجتماعی به کار برده شد اما هم اونای که خاندیم چه بست در اون سیاق تعبیری در سیاق تعبیریاتون هست نظام البلاد میگفتن خب اینجا دیگه تصریح شوقشم معلوم بود اونجا هم شاید من هم آقای تبریزی داشتن دور میشه برگردم اون عبارات رو عرض کنم احیانا بعضش نظام معیشت و اینها بود اما یه جاهای مثلا می توانیم اه تعبیر آی تبریزی باز بود شاید همین بود البته نز صفحه بله همین سرات و نجات اونجا زدم صفحه 371 مجالس استشاریه بود خب جا اونجا هم هم پس اون تعابیر بود بعد صفحه 462 دو بله اینجا این صفحه همین مورد نوشتم یه طبق علاقه نظام معیش دلباد و حفظ الامن للبلاد و تمکین المؤمن لقتعیاد العدا و دقل متجاوزی من عراضی این خب این چیه این نظام نظام معیشت عباد دیگه صرف نظام اجتماعی نیست که افراد به صورت تک تک با اون مواجه باشند بلکه اه، کل اه، اینهای وسطی سیاسیه خب این یک نصف حالا بعضی تقابیل دیگه ممکنه باز داشتن خدمت شما از پس ما از مفاهیم عام درست شروع کردیم اکثرا فوقه ها نظام اجتماع رو گفتن اما آیا محدود ما اگر به کار ببریم در فیخ ازش بخوایم بحث کنیم چون که فوقه قبل فرض بگیریم اصلا به کار نبرده باشن اشکالی داره ما نمود نظام سیاسی حرف بزنیم و صحبت از حفظ نظامش بکنیم. ممکنه بعضی از این افراد اینطوری بخواد تقدیر کنم بگن که نه بابا مو... یه موقع مثلا یکی از این آقایان یک بحث تضاحم حفظ نظام سیاسی و نظام اجتماعی رو داشت مطرح میکنه از این از آقایان مجمعین اصلاح طلب در قوم. که نظام سیاسی تضاحم پیدا بکنه همسش با حفظ نظام اجتماعی کدام مقدمه از اینجا و کوهک بگن که اکثرا فقاها که گفتن حفظ نظام یعنی حفظ نظام اجتماعی اولا آیا واقعا هست نظام اجتماع به این راحتی اینجوری تظام پیدا میکنه بعد اون جایی که نظام سیاسی بخواد به هم بخوره هرداقل به صورت موقت نظام اجتماعی به هم نمیخوره فقط نظام سیاسی به هم میخوره کپی خب، موقع ممکن دراز مدت بگن یه کمی چیز داره بگن که خب کوتاه مدت حفظ نظام، این نظام سیاسی رو ما این نظام سیاسی رو حفظ نکنیم چرا چون که اگه این نظام سیاسی حفظ بشه این نظام سیاسی خاص این فاسده اه خب تضاهم داره اگر ما بخوایم در واقع به این معنا بگیم این نظام سیاسی دچار مشکله پس نظام اجتماعی هم مختل شده ولی یک سوال آیا همه این نظام های سیاسی که ما تا به حال داشتیم فاسد بودن جائر بودن نظام اجتماعیشون از بین رفته بود یا در همون جا همون در کل دنیا نظام اجتماعیشون هست بله انحراف داره فسق نظام اجتماعی داره. انحراف داره اگر بگیم نظام اجتماعی دینی بله با حفظ ممکنه بگیم نظام سیاسی جاعر تحققش به بنایه اینه که نظام سیاسی اجتماعی دینی تحقق نداره خب در مجموع این دوتا رو باید بسنجیم ببینیم که چقدر جا داره اصلا ترهش بکنیم یا نه برگردیم عرضه کلی پس این هم مو مورد از مفهوم مفهوم چهارم کارورد چهارم می توان خیلی محدودتر بگیریم مثلا یه موقع میگیم نظام سیاسی اسلام یه موقع میگیم نظام سیاسی امروز ایران خب نظام سیاسی شد ولی یه نظام سیاسی جزئی خب اینا هم قابل کارورد هست و طبیعتا نکته اساسی اینه که این این پیام ها سریم یا میره من تا بخوام برم ببینم بعضی موارد رو سریم ممکنه ببینم اجمالا فهمیدم دوستان یه نقطه فرمودن در نظام اجتماعی سیاسی قبل داشتیم الان داشتیم فوقها دیدگاهشون ناظر به چیه حضرت امام یکی از دوستان انگاری پیام دادن که مد نظرشون بله تو همین فضا بوده خب جایی بحث داره که این رو نکته سنجی خوبیه که ببینیم چه مصداقن مثلا فرض بگیریم حضرت امام قبل از انقلاق میگفتن نظام سیاسی نمیگفتن چه محنوی مراد کردن پس اینجا در بحث در بقیه سیغه های تعبیری مفهوم شناسی موادی تصوری بودیم یه نکته دیگه کمک میکنه به این بحث موادی تصوری بحث اوصاف نظام یک اوصاف مختلف ممکنه بیاریم مثلا وصف نوعیت این مسئله مهمیه بعضی جاها میگن که نظام نوعی بعدم که وقتی صحبت از حفظ نظام میکنن چه نظامی باید حفظ بشه نظام نوعی نظام نوعی یعنی چی یعنی به مصالح عامه جامعه برمیگرده به نظام به مصالح نوعی برمیگرده نه اینکه لزوما به یکای که افراد برگرده اینو من شبیه اون مفهوم خطابات قانونی میگیرم ببینید مثلا خطابات نظریه مقابل خطابات قانونیه خطابات قانونی نظریه حضرت امام مقابلش نظریه انحلاله برای هم ناینی نظریه انحلال ناظر به چیه؟ این که یعنی یک مفهوم یک مفهوم یک دی حکم منحل به تعداد افراد متعلقش میشه مخاطبش صد مثلا است این حکم به یکای که اونا داره منحل میشه به یکایی که میخوره بعد مباعثی مطرح میشه که ای خب آیا عالم میتوانه محکوم این حکم بشه جاهل میتوانه ناسی میتوانه یا نه یا بعضیش اینجا بلسه معرکه انظار میشه حضرت امام دیدگاه نظر خطابات قانونی رو که میارن میگن آقا منحل نمیشه این آمه بله عقل این متوجه طبیعت کلی است عقل که بعدا تطبیق میکنه بر موارد لذا به یک صورتی در واقع به صورت مستقیم انحلالی به ناسی و جاهل و کافر و اینا نمیخوره ناتوان نمیخوره به صورت انحلالی ولی به یک معنا در واقع این راهی که تکلیف و اون و هم. یک نوع عمومیت و شمولیتی داشته باشه اونها ناسی و نامی و کسایی اینجوری از دایره ناتوان به خارج نشند اینجا هم یه مقدار شبیه اون وقتی که میگیم نظام نوعی من تشبیه میکنم شبیه نظریهات کاملی اگه اگر انحلالی باشه، بارش شبیه نظریه انقلاب با اینجا برگردونید در واقع باید بگیم مثلا مصلحت زن نظام باید به تک تک افراد بخوره. همه وقتی که میدیم ها حفظ نظام نظام نوعی مساله نوعی اینجا به یک کایت نزومن بر به نوع افراد بر یه جوری شبیه به گوه بودن هم میتوانه داشته باشه. مثلا مرحوم میرزای اشتیانی در مورد مسلحت تشریع قصاص به صورت تربیهی نکته اینجوری دارن حالا عبارت رو بخوانم بخوانم طولانیه یه جمله شینه بل حدود دعوت لکم فی القصات حیاتون وینامی فرماید بل حدود و شعر نعمان از امور المهم من راجع مساله و الاباد خوب اینجا الان با قبضش میگن با حذف نظام المعلومه فی الجهاد با حذف نظام المعلومه فی القصات خوب عملا یک جلو تر از اسلام و نام شر و این ندارم میشه بگیم این معبرت نوع به نوعی به فضای نوعی بر میگرده خب آم از اون مورد قبلی هم یه مصداق زیبایی از آقای تریز فروش کردن تا یادم نرف درس کنم ویز رفته صفحه بعد اون که حبز نظام رو میگه سوال میپرسند که آیا پظات در شرکت در پظارات، که جمهوری اسلامی صورت رسمی دعوت میکنه شهروندان ایرانی و غیر غیران آیا واجبه؟ آیتالله تبریزی میگن هل یجب علا مباطن مباطن شهروند المباطن ایرانی و غیری الحضور و فر تظاهرات علتی علاقه ها میگنی بزاهرات تظاهرات علتی تر و به شکل رسمی مرموم اطلاع تبریزی میفرم یجب الحضور ازادکان فیل ترکی تضعیف خب قشن من تبریزی این نظام رو به منده سیاسی به کار گرفته خب این بعضی از این گرایش های روشنفکری اصلاح طلب و روشنفکری حوزوی حوزمی گایوان میگن فقه ها خلاصه عمدتا نظام رو منع نظام اجتماعی گرفتن با آقاهای تبریزی که به اون معنا ولایت عدل ولایت بلدفقی به اون صورت که قایل نیستن و از باب حسبه دارن میگن یه چون سنتی هن حالا اینجا مرادشون ان نظام چیه؟ نظام سیاسیه دیگه تصریح سوالید که نظام جمهوری اسلامی در به میتز تظاهرات کرده اشانا میگه اگر تصریح نظام باشه باید حاضر بشین خب اینجا اینم عرض کنم در واقع بین تقویت نظام، حفظ نظام، تضعیف نظامی تفاوت هست. نگفتن اگر تقویت باشه واجبه. تعبیرشون گفته که شر اگه تضعیف بشه، حضور واجبه. حکم خب رو بردن سر تضعیف، در ترک تضعیف نوردن رو وجود حالا اون یه بحث حکم خب شناسانه هست خب این هم جا مانده بود درس کرده پس یکی وصف نوعیت بود خب وصف مثلا تعبیری که ایشان دارن مرحوم میزا محمدتقی شیرازی در هاشیوه مکاسب تعبیرشون اینه یه وصفی دارن حالا بنا قول و یه توقف علیه بنا الحیاتی بعض الاوقات اشاراتی دارن زنش میگن و او از صناع متوقفه علیه ها هریزون نظام نوی زمنوازه اند نظام نوعی لا یخ طلو به او اشخاص نظام نوی میاره و مثلا فرض کن آقا باید بریم سراغ ساختن این صناعه و اینها این موارد یا چیزایی دیگه که بناه حیاته میگن آقا نظام نوعی مهمره ولی نظام نوعی با رفت آمده یکی دو نفر از بین نمیره یه شاکلی کلی من یه تشمیل دیگه ارز کنم و در موقع استفاده دیگه هم میخوام بکنم توی بحث. تو بحث سهی و اهم اه، یک ای داریم به عنوان نظری زبان، شناسی. یک مثال جالبی در اونجا است میگن آقا برای بحث سعید و اهمی خب چه چیزی شاخص است مثال گربه مثلا آیا اگر گوشش رو ما تغییر بدیم دیگه بهش نمیگیم گربه میبینیم میگیم اگر پاش رو پاشو پاش بکنیم باشه بزرگ کنیم کچی کنیم باز بهش میگیم گربه میبینیم گربه میگیم اگر این سیبیل گرامی این آقا گربه رو برداریم باز بهش میگیم گربه یه رکنه اساسیه در گربه چرا؟ چون از جای سراخ چیزی میخواه رد بشه خلاصا اون سیبیل گرامی میار و شاخص و راه نماشه تیپ و حیبتش هم بخشش به این سیبیلش میتونه برگرد خب اینو ازش بگیریم باز گربه است میبینیم بله در مجموعه یه مجموعه از اناسور بابی در کنار هم بایه هیئت تعلیفی خاص هست اینجا هم همینطور اون در اجزا بود که این عضو رو برداریم اون عضو رو برداریم کدام به خلاصه شاخص صدق این مفهومه حالا در, اون در اینجا که مصداقه هایی وجود داره برای شکل گیری جامعه اگر این شخص اون شخص نباشه، بگیم مثلاً کل اعتباریه حالا که در گربه کل واقعیه در جامعه خب جمله حفظ تعادل در گربه به خلاصه سیویل گرامی میشونه خب تشکر هست ولی اون اعتدالشه اون تعدلشه اما در این بهش بگیم گربه یا نگیم حالا در این مفهوم نظام مفهوم نظام یه مفهوم انتظائیه اعتباری نیست انتظار میشه از افرادی که یه مناسبات خاصی داشته باشن یه تعلقی، یه پیوند خاصی هم بینشون برقرار باشه ولی همینطوری افراد جمع کنیم نمیگیم جامعه، نمیگیم مجتمع نمیگیم نظام، نظام اجتماعی، نمیگیم نظام سیاسی باید اون رابطه خاستر باشه تا نظام اجتماعی تبدیل به نظام سیاسی، به واحد سیاسی بشه خب، ولی در یک شیعه اجزائش هست. اینجا اجزای مد... مثلا میگی مجازی. خب حالا اینجا یه مستاکهایی هم داره بر نظام. یا وا این شخص و اون شخص نیست. پس اینم وصف نوعی که خلاصه منوت به وجود و عضویت یک عضو نیست. اون عضو باشه، نباشه، پیر بشه، جوان بشه برای این جامعه جامعه است. نظام نظام مفهوم دوم کلیت وث کلیت اینا معمولا به کار می بعضی موقع به کار می مر مفهوم ناینی خواستن امور رو دو دسته بکنن اموری که حفظ نظام متوقف بر اونهاست اموری که حفظ نظام متوقف بر اونها نیست این این دو دسته رو که فرمودن مفهوم کلیت رو هم براش به کار در معنی تو طالب جلد یک میگه فایض طعذر رجوع الی فعل امور اللتی توقف و وحفظ النظام علیها فلا و عم سه نقطه و اما امور لتی لا توقف و حفظ النظام الکلی علیها این نظامی که کلیه پس در واقع ما مفهوم کلیت رو اینجا براتون نظام به کار بردیم خب کل در واقع اون جایی که اجزا داره اینجا الان می‌گیم جامعه یه مفهوم انتزائیه به این معنا اجزای واقعی نداره می توانیم بگیم اجزای مثلا غیر واقعی داره منشع داره خب حالا این نظام اگر ما براش کلی بیاریم می توانیم با نگاه منطقی بگیم یک نظام اجتماعی در ایران داریم نظام اجتماعی در عراق داریم نظام اجتماعی البته ظاهرا مرادهشان این نیست این میخواد نمیخواد بگه که چند تا مثاق داره ولی میتونه به این معنام هم باشه به هر میخواد بگه نظام یه چیزه حالا اون تو کلی که خودمون به کار میبریم میگه آقا یه امر کلیه خب امر کلیه یه در واقع شبیه اون گربهه شد که یه جور اینه که میخوام بگیم این عضو باشه اون عضو با این صدق نباشه این اسم برش هست الان یه صندلی چهار ص پایه داره یه پایش بشکنه باز بهش میگیم صندلی. خب در واقع اون اسم هنوز هست عنوانه هنوز هست ذادن کلی مرادشون اینه هرچند می در واقع به این یه جوری شبیه نوعیه اینجا به نظرم هرچند میتوانیم به اون معنی دهت و مصداق هم بگیریم نظام اجتماعی در ایران در عراق در فلان جا ولی ظاهرا یه چیز شبیه اون نوعیه یعنی با چند مصداق داشتنش کار نداره بلکه با این کار داره در این تعبیر مرحومه ناینی که خلاصه یه امریه که به نوع برمیگرده یه چیز مستقلیه خب این هم دو تا بحث پس دو بحث دوم بعضی از اوصاف ممکنه اوصاف دیگه هم پیدا کنیم ولی این نوعی بودن و کلی بودن حالا کلیشا کمتر به کار بره اینا به نظر مهمه یه بحث دیگه حالا امروز با پوزش مادی شروع کردیم فکر می‌کنم یه کمی ادامه بدیم تقریبا داره میشه 1 ساعت بحث مهم سوم بحث حکم زن نظام و حکم اختلال نظام طبیعتا الان ما چند تا مفهوم می توانیم داشته باشیم مفهوم در واقع خدمت شما عرض کنم حفظ نظام می توانیم داشته باشیم می مفهوم در واقع تاسیس داشته باشیم حصول. حالا صرف مفهوم نباشه در واقع حکمش حصول نظام تاسیس نظام یک قدم بریم جلو تقویت نظام یا ببخشه قبلش بعد از حصول و تحقق و تحسیس مقوله حفظ میام مقابلش مقابل عدم حصول و عدم تحسیس خب اون هیچی ولی وقتی که نظام داریم حفظ نظام مقابلش اختلال نظام یه جایی هم اگه خاطرتون باشه یه تعبیر یکی از بزرگواران گفتن اخلال نظام حالا شاید هم مرادشون اختلال بوده ولی برای نزدگه اخلال خلاصه اخلال کردن اگه بگیریم تقویت نظام اینم یه جایی ممکنه مت... تفاوت باشه یه جایی در مقابل حفظ اختلال باشه تضعیف نظام هم ممکنه بگیم تضعیف یه جوری نز... زعیفتن از اختلال نظامه اختلال دیگه اون کل نظام دوچار مشکل شده تضیف ضعیفه اقتدارشو دست داده بقل دست حفظ نظام میشه بگیم حفظ نظام حفظ یه موقع حفظ اصل نظامه یه موقع حفظ اقتدار نظامه این حفظ اقتدار نظام خب به معقوله خواسته در واقع اینو من دارم چه کار میکنم تشکیق شقوق میکنم یکی از مسائل مهم تفریه مسائله خب اگر تفریق که بشه در لابلاهی نگاه استقرایی و روی کرد استقرایی شما نکات ضریفتری مال بانوانش کمک به بحث و گرم کردن ذهن دوستان بزرگوار داریم و رو به کار میبریم ولی این مهمه که خلاصه این مقولات رو از هم جدا بفرمایید. حفظ نظام حفظ اقتدار نظام یه جایی ممکنه بگیم حفظ آب روی نظام من یه تعبیر دیگه ارز ما مای بحثی در خاطر تون باشه مای بحث مقاصد شریعت رو داشتیم سیر تطور داره غزالی و جووینی و ازددین ابت سلام و اینا بحث داشتن میاب شاطبی که میرسه خب به بحث های پر رنگ میشه این وسط یه سیستم سگانه دارن به عنوان چی؟ توقعه بندی احکام و مقاصد دستهی بال محور بست مقاصد ضروری بعد مقاصد حاجی بعد مقاصد تحسینی شه مقاصد ضروری که خود ضروریه اگه زر اونها نباشه خدمت شما ارز کنم اگر این پیام که آمد من ذهنم مخدوش شد حفظ نظام بباشید در مرحله ضروریات حالا تعریفش کار نداریم قبلا کردیم با نگاه فردگرایانه حالا با تعبیر بعضیا ها قدیمی ها چند تا مفهوم رو بردن چند مستا سلام علیکم خیلی من شما کنم چند مفهوم رو ما داریم که به عنوان ضروریات بردن. حفظ بردن حفظ دین حفظ نفس حفظ عقل بعضی ها گفتن حفظ عرض بعضی ها گفتن حفظ نسل حفظ مال خب بعضی از این معاصرین آمدن گفتن آقا چرا اینا رو محدود کردید اینا عمدتا فردگرا یا نست شما بیاید مقولای دیگر هم بگید اجتماعیاتش هم بگید یه آقای جمالو اتیه که وکیلم هست از این شیخ نشین ها اون که دیگه خیلی مفصل نبیدم و 34 مورد رو چند مورد رو برده قبلتر ابن آشور و از این موارد خدمت شما ارز کنم آمدن موارد دیگه گفتن بباشه اگه پیام ندید من الان تمرکزم به هم میخوره خدمت شما ارز کنم خب ببینید الان با این نگاه ها ما بیتوانیم مقوله بندی کنیم مسئله سازی کنیم مسئله شناسی کنیم همه اینا حکمش میتوانیم متفاوت باشه الان در اون تعبیر آیتالله تبریزی رزبان الله تعالی علیه دیدید گفتش در آیا باید در تظاهرات جمهور اسلامی دعوت وقت شرکت کنیم گفتن اگه شرکت نکنید تضعیف بشه واجبه نیارو بردن رو تضعیف خب میتوانیم مقوله دیگه داشته باشیم مثلا خب حالا از این نحی از منکرهای عجیب قریب به حال الان شما برخورد میکنید مردم به شما یه مخصوصا اگر معمن باشید یه تکاهایی میندازن متأسفانه الان من با تاخیر که آمدم از جلوی حرم حضار می میشدم ترافیل شدیدی هم بود با تخیر رسیدیم یه طلبه بغل دست دیدم ماشینی میبرد و خانوادش هم بود و خلا خدا حفظش کنه داداشش کنه یه بار دیدم سیگار در آورده و خلاصه همونجا روشن کرد و سیگار پشیدن و سیگارش رو دیگه بیرون و بغلش میشه می‌شم تذکر بهش دادم شروع کرد عین این مردم عوام خیلی عوامانه حرفای پرت و پر آها اگر درست بشه من مخصوصاً بچه‌اشو زن بچه‌ش هم بودن خیلی زشت بودیل در به نظر من بله اگر زناب بکنن ولی درست کار کنن مردم بدبین نکنن اگر فلان کارو بکنن ولی مردم بدبین نکنن نستاق <تصفح> بردیزش خود شمایید دیگه حالا اون زربال مسئله رایج مردم که میگن آقا تخم آقا دوست شطور داز میشه ما باید بگیم آقا آخوند سیگاری میتوانه آخوند معتاد و آخوند تریاکی و آخوند قاچاخچی هم بشه خب ببینید الان هیچی که نباشه الان همین که سیگار میکشه آبروی روحانیتی داره در این فضا بله قدیمان رایش بود عادی بود اصلا قبحی نداشت ولی الان قفت داره یا نداره آبروی حوزه داره میبره آبروی روحانیتی میبره بعد جالب این که در پاسخ توجیه هم میکن حمله به الباقی کل جامعه و حوزه و روحانیت میکنه در مورد نظام سیاسی هم همینطور ما میتوانیم مرحلی تأسیس نظام رو حتی در قاعده سازی این رو ما در نظر داشتیم حفظ اوبروی نظام حفظ خب این مصادیق رو باید از هم تفکیک کرد من بعضی عبارات رو بخونم بس محور بس مثلا حفظ نظام اختلال نظام برخی از فوق ها فرمودن که وجوب حفظ نظام و از اون طرف چون دو تا مفهوم نزدیکیه گویغا با هم, هم میان مثبت و منفی شد. و حرمت اختلال نظام رو فرمودن عقلیه مثلا مرحوم آقای محمد ابن محمد تقیه بحرال علوم متوفی 1326 در کتاب مشکور بلغت الفقی پس مرحوم بحرال علوم در کتاب شریف بلغت الفقی این اینطوری دارن و به ضرورت العقل الحاکم به وجوب حفظ نظام می این ضرورت نه تنها میکن حکم عقل بباشه من که کلاس میفرمایند ضرورت عقل اینجا حکم میکنه به وجوبه حفظ نظام <تصفح> خب این از حدیق مرهون در کتاب القضا میفرمایند حالا م... عبارات طولانیه اون قسمت آخرش میهم اه... بل ربما رب قیل کما هو الحق تو اون بحثی کاله دارن به دلالت العقل علی ایزن و توقف نظام علی نظام بر اون توقف داره در واقع بگیم حفظ نظام بگیم تشکیل نظام این تعبیر چیه؟ بدلالت دلالت العقل تعبیر دیگه میفرمایند صفحه 84 در همون جلد یک بحث حکم مقلل به صورت المفروضه فلسه الا من جهت حکم العقل لعلا یلزم اختلال و نظام العالم و اساس و عشق بنی آدم این طبیر قبلا خاندیم میگن فلان موضوع حکمش اینه چرا؟ چون که عقل حکم میکنه جوری عقل حکم میکنه؟ که نمیگن اگر فلان نباشه منجر به اختلال نظام میشه لعلا يلزم عقل برای اینکه منجر به اختلال نظام نشه حکم فلان موضوع میکنه خب اینجا در واقع اینجا یه قدم برده جلو گرفت پیش‌فرض گرفته که اختلال نظام عالم خلاصه حرام بعد عقل اینو تطبیق میکنه میگه فلان کار منتهی به اختلال نظام میشه پس مثلا حرام است تعبیر دیگه میگن مرحوم محمد طقی شیرازی در حاشیه و مکاسب شیخ الا یکونال جواب و راجع الادع و خروج المورد به دلیل العقلی و خوبه لزوم اختلال نظام دلیل عقلی ما چیه؟ لزوم اختلال نظامه جنابای روحانی منتقل اصول و اما در جلده هفته سفت و تو حالا بحثش کار نداریم و چی هست و اما دلیل العقلی تون بست فهوه لزوم و اختلال نظام من ترک الحمل علی سهر و حوه وازون وجدان. خب لزوم اختلال نظام رو دلیل عقلی دانستند. خب این هم نکته خب پس این در واقع حفظ نظام و حرمت اختلال نظام به عنوان یک حکم عقلی تلقی شده م... اما برخی چجوری گفتن در اون حفظ نظام یه جور صحبت کردن که به عنوان امر اغلاییه به تفاوت حکم اقل با حکم اغلا چیه حکم اقل حکم قطعی استثنان ناپذیره حکم اغلا یه جای استثنان داره هاشیهی داره به ارحال مطلق مطلق نیست تفاوت حکم اقل اغلا اینه اغلا یه جای تجویزهای خلاف داشته باشن و اکثریه خب بعضی ها از حکم عقل پریس کردن یه جوری صحبت کردن که نه حکم اقلائیه مثلا یه موردی که حالا من خدمت شما عرض میکنم مثلا آقای مصاحبه منتقل اصول جلد هفت صفحه 81 آقای ست محمد روحانی تو بحث تزکیه بحث از حکم تسکیه از طریق اصالتیت احتمالات سوبوتی مختلف رو مطرح کردن در مورد حکم تسکیه بعد یکی از احتمالات ضرورت حفظ نظامه بحث تسکیه است تمسک میکنم به بحث حفظ نظام یه جوری این رو آوردن که انه به قرینه این که در کنار بعضی موارد دیگه آوردن که اونها یه حالت اوغلایی داره مثل مسلحت تسهیل بر مؤمنین مسلحت پرهیز از افتادن مردم مؤمنین در عصر حرج مسلحت زنظام و با توجه و یه جوری کنده از ضرورت اوغلایی تلقی شده اشان از اشاره کردن به قول مرحوم اصفهانی که در مقام سبوت از این موقع در مقام اثبات در مورد این مقوله بحث شده کلام گفتن مرمون اثبانی جوری گفتن محقق اثبانی که حکمی به تسکیه و کرد گفتن قد زکر المحقق و لثبانی اندل کلام یکون تارتن فی مقام سود و اخرا فی مقام لثبات عمل کلام فی مقام سود و محسلهو او حکمه به به تسکیه ما مثلا حکم تسکیم میخواییم بکنیم در مقام بررسی سبوتی این که میخواییم بگیم در عالم تشریح خدای متعال چه چیزهای لحاظ کرده که اینجوری حکم کرده در واقع مسئله مقصده چی بوده چند مورد رو اشاره فر بودن احتمالات مختلف یا اینه که و اما ان یکون لعجل توقف حفظ نظام علی؟ چرا حکمه به تسکیه کردن؟ چون گفت ممکنه به خاطر این باشه که حفظ ممکنه چی باشه؟ تسهیل علمومن و تسهیل علمومنین البته این تسهیل رو عطف کردن به حفظ نظام ها ممکنه یه جوری حفظ نظام هم به معنای در واقع حفظ نظام نوعی باید نگاه به این قرار نوست هم میگیم یه جوری اغلائیه. چونکه نظام ممکن است هم نپاشه سخت بشه نظام واوه تفسیری یا یه استدلال دیگه باید بگیریم یا عطف تفسیر اون بگیریم که اگر اونطور باشه نظام یه جوری نظام جنبه رفاهی مثلا توش بیام اول اجلل قلبه قلبه کون ما فی عید المسلمی من زباهم و این, این احت... دو دوتا احتمال و اما له اجل ظهور حال المسلم فی انراض تسکیه خب هر کدام روی توضیحاتی دادن بعد حالا اون عقلایی بودنش هم میوقدی به این برنامه گره گفتم اون استدلال اول حفظ نظام چگونه است و علل اول فهو و متع و من نسبت الا ذبیحه المستحیل لان غالب المسلمین من اهل سنت نکتر برده رو قلبه و هم یستهلون زبیه کتابی زبیه کتابی رو حلال میدانن اهل سنت فتحر روز انزبائه هم یوج بل اسره و الاختلال غالباً به این مفهوم غلبه رو چه, چه جوری ببینید پس ادم میگه تذکیه چه رفتی به حفظ نظام داره الان اینجا معلومه که میفرماین که ها خب این واوه تفسیرم اینجا ملوم میشه که تفسیره میگه حفظ نظام الله و تسهیل پس یه معنای حفظ نظام هم در واقع یعنی حفظ نظام یه سطحی در واقع اگر عصر و حرج بشه جامعه دوچار مشکل میشه یه جوری اختلال ایجاد میشه حفظ نظام یعنی که دوچار عصر و حرج میشن ولی اختلال غالبا اکثرا تو محل که خلیصه اینجوری هستن اهل سنتن و اونا فتوه که زبیه کتابی حلاله یا سهلونه حلال تلقش میکنن زبیه کتابی رو و طبیعتا استفاده میکنن تو سوقل مستمی میارن خب ما اگر نخواهیم استفاده بکنم اسره عصر حرج فراوان ایجاد میکنه و خب اسره حرج بشه ول اختلال غالبن حالا که اصر و حرش میشه یه اختلال نظامی حاصل میشه این ها صد تا مشکل براشون درست میشه. خب گوشت ذبیحه رو نواد بخورن. خب چه کار کنن؟ باید بدن خودشون مثلا گوسفند بگیرن، خودشون بکشن. صد تا گرفتاری درست میشه. خودش بلد نیست، بعد بره کارش تعطیل کنه، بره ذبیح گوشت بخ... بیاره، گوشتفند بخره منزلش اینجا برای رفخاستگی هم ارث کنم. اولین سفیر ایران در آمریکا یک کتابی داره به اسم خاطرات حاجی واشنگتن. بعد یه مقدار این کتاب جنبه تحقیر فضای ایرانی هم داره. فیلمش هم آقای خاتمی کیا فکر آقای مرحوم خاتمی کیا بود نه خاتمی درست کرده این جنبه تغییرش رو هم پررنگ‌تر چه وسا کرده کتاب جالبی اون. این بندی خدا آقای حاجی واشنگتن خلاصه میره حج و حاجی میشه و بعد میفرسنش میره در آمریکا بشه سفیر. سفیر ایران خب میره بعد پولی نمیدن یه همراهی هم داره اون فیلم آقای حاتمی اینجوری ساخته بعضی فیلم های دیگرش هم یه مقدار جنبه تمسخوری و اینا رو بیشتر میکنه و نقد بکنه مثلا دیگه ولی اون کتاب خودش اینجوریه بلکه بعضی این روشنفکرانی رو چاپ کردن به خاطر یه جوری تو ازمنه قبل تحقیر روحی ایرانی این بندی خود رو بی پول می فرستند، دوبار مشکل می شه بعد میره بازور بالا دیدن شاه دیدار رستمور یه بار می بینه تو حالا اون فیلم کتابش من خواندم آفرمیش که ولی یکی دو بار این فیلمش دیدم می فرستن این شاه می آید میاد دیدن این این هم چقدر خوشحال و از صبح تا عصر وقت میذاره هر چی خلاصه داره و نداره میاره گشتگاب میکنه بهترین غذاها و بهترین خلاصه تحویلش میگیره آخر کار چقدر خوشحاله بدنامه نامه برای شاه و فالای نابد آخرش معلوم میگه آقا من دیگه دورم تمام شده این اینقدر نادان و برحال فضا اونجایی چیه دستش بر نمیاد. و رجئت پالاپیش کار کنه خلاصه نفهمید که این رئیس جمهور اول شده خوشش آمده از ای ای ایرانی و خلاصه اینا خوشش آمده از استقبال قبلا بهش پسته داده بود حالا اومده اینجا کلی تعویض میگیره کار که تموم میشه کلی خسته میشه از صبح تا عصر بعد میفهمه رئیس جمهور معلوم میشه رئیس جمهور سابق عوض شده این نفهمیده خب حالا ببینید اینجوری ما اگر نگاه کنیم با این تعبیر مرحوم اصفهانی که آقای روحانی نقل میکنه کعن یه دشواری ها و اسره حرج به اختلال نظام برمیگرده پس یه جا اسره حرج فردی ممکنه پیش بیاد یه جایی ممکنه این رو من اضافه بر متن عرض میکنم برای تفسیر این قسمت طبیعتا هر اسره حرج اختلال نظام نمیشه چون که محور بحث رو میبرن سر قلبه غلبه اهل سنت جمعه این میشه اینجا تو تحلیل سبوتی هم بوده گفتن ما میخواییم ببینیم چرا فرض کنیم حکم تسکیه شده احتمالات مختلفه یه احتمالش حفظ نظام و تسهیل بر مؤمنین بود عملا در واقع حفظ نظام اجتماعی اینجا با تسهیل عمومی و منع عصر حرج عمومی خلاصه معترض همیشه البته ممکنه بگیم در یه جامعه برای شیعه برفرض داره میگه این که اکثریت اهل سنتن حالا ممکنه البته به فردم بخوره اگر بگیم یا گروه‌های شیعه خلاصو بند این حکم این گونه باشه خب پس این یه بحثی ما گفتیم که است... تمسوک به استدلال عقلی شده یه موردم بعضی عبارات و اینا نشان میده یه جوری تفسیر عقلایی شده که در کنار مسئله تسهیل و مر مسئله پرهیز از اسر و اینهاست. اینا یه جوری ضرورت اوغلایی دیگه خب یه نکته دیگه اینجا هست که اگر این بحث حفظ نظام یک حکم عقلی باشه عرض کردم حکم عقلی خیلی فراگیره طبیعتاً یه جوری اگه حکم عقلی باشه دیگه حکم عقل به بقای نظام و به حفظ نظام دیگه مال همه از من است اما اگر یا هم شرایط مختلف و اینها اما اگر حکم اقلائی باشه یه جوری جوری ممکنه استثناءاتی هم بخوره حالا یه مصداق دیگر من محوم آشتیانی من اشاره بکنم که حکم عقل میگن نهازا مملا اشکالفی بعدم ملاحظته حکم العقل بله خواهش میکنم آیل اگر بعد هم من خدمت شما کاری هم دارم لا اشکال فی بعد ملاحظه ملاحظت و حکم العقل به مطلوبیت بقای نظام فی کل زمان اگر حکم عقله این دیگه کلی دیگه مرحوم آشتیانی اون لازمه عقلی بودن رو خلاصه در نظر گرفتن و اینجا یه مصداقش رو ما ممکنه تو یه زمان بگیم ایشان گفتن که اگر حکم عقل باشه حکم عقل برای همه از من است خب این هم یک نکته دیگه بحث دیگه این که هو خب وجوب حفظ نظام چه عقلی حسابش کنیم چه اوغلایی معمولا مستند بسیاری از احکام اوغلایی قرار گرفته حتی عبارتی که داریم مثلا مرحوم اصفهانی این مستند حکم و بنای اقلا بر حسن عدل و قبه ظلم تلقی کرده حالا به گزارش مرحوم آقای روحانی ولی لیس حسن العدل و قبه ظلم به من و استحقاق المته و زماله من الاحکام الاقلی الواقعی بل من الاحکام الاقلائی و هیه ما تطابقت علیه آرال اقلال لعوموم مساله ها و ل لنظام مرحوم البته من اینجا عبارت نیاوردن ولی فکر کنم تو توضیحش گفتم مرحوم اصفهانی خب مرحوم اصفهانی دیدگاه خاصی دارن در مورد بحث ثنو عقلا و اینها که مرحوم آقای مزفرم با همین رو که تو اصول فقه بحث و دنبال کردن خب سوال حسن عقل قه ظلم آیا حکم عقلیه حکم عقلی واقعیه میگن نه این حسنعت حکم عقل نیست بلکه از احکام اغلاییه احکام اغلایی چیه؟ اونایی که آراء اغلا نسبت به اون توافق دارن چرا توافق دارن؟ چون که مسالهش عمومیت داره لعموم مساله ها نه حفظ دن نظام اون تعبیری که قبلا گفتیم احکام اغلایی اون تعبیر آقای خویی رو بود بایشون هم میخوره اتا آقای خویی شاگرد آقای اسم همسفانی هم بوده دیگه هر چند به منو ناینی که استاد دیگرش بود به اون بیشتر نازک شد خب و حفظه نظام احکام اقلائی ناظر به حفظ نظام و مساله عموم ام. مساله خب این هم در واقع یه نکته ای که حکمه به حجوم حفظ نظام مستند احکام اقلائی قرار گرفته حتی مثلا برای حسن خوب و حسن خوبه ظلم اما خب محدود به این بحث نیست و می توانند حالا آیه روحانی تعبیر اینجوری هم دارند که محدود به این مورد نیست به خاطر حفظ نظام اوغلا می توانند یه احکامی هم به صورت ظاهری و تبدی خلاصه مد نظر قرار بدن من بیش از این شما رو خسته نکنم یک ساعت و 20 دقیقه شد حالا اگر فرماشی دارید من بحث ببرم البته می خواستیم جلسه رو دو قسمت کنیم من فایلم طولانی شد گفتم دیگه دوتاش نکنم این جلسه طولانی شد خب دوستان اگر فرماشی دارن تا ببینم البته اگر اجازه بدید دو ستا چند تا نکته دیگرم هست که بعد جلسه بعد انشاءالله عرض میکنم حالا طولانی نشه این قسمت اطمامش اطمام بحث نیست اگر فرماشی دارید استفاده کنیم بعد این بحث رو تمام کنیم دوستان حلقه درس های بحث های استاد رو جناب ایر رای بفهمونم الحمدلالربالالامین بسالالله بس علی سیدنا و نبی نابل قاسم محمد بفهمت دکتی اگر هست سلام و علیکم السلام و رحمت الله بسید پرسی که توید کفزه قالی از رضا مزدی که حتی یک پشت خوجه به این ما اگر بخوام باقردن توی نظامی یک قومتی به اشجابیز بذاری این خطیقه به چیز شما مثلا خدم بسیر رو توچینی کنند اینجا چیز میشه اجرایی میشه یا این هم پیرس نظام میستند دقون یک قواعدی داره برای پیرس مثلا شما مثلا اونای که مثلا محافظ کار هم مثلا یک اقا اعتراق این مثلا چیز باز نظام دشتتانش نیفته یا بودن تضعیف بشه اینا خلق اعتراضی به و تلقیه تضعیف نظام میدونه این حدیه اصلا بهش خوش هست که تشخیص میتگیم تشخیص اون حاکمان هست در تشخیص اقلاعیه یا همون اجتماع هست اینا اینا باید روشن بشه برداره تو فیقه سیاست و اگر نه اون فیرس نظام تو تمام جوابه هست و تو قانونت هم نسبت به خودش هست خیلی حفظ نظام همان تو سیاهت خواهشون خیلی اهمیت بهش میدن دهند تو همه جوابه حفظ نظام پرکیزه. اما اینکه که حد یک خبشه کجا چجوری باید این اشناب بشه اینو کی تشکستنده که مثلا اینای اینکه مثلا تو جامعه حرکت های مخارجی میاد مثلا علایه سازکاری یا ساختهی چید کنند اینو مثلا هر طرف اینو هر چیز رو مثلا برمان برمان تنظیم و, و تنظیم استقرار نظام ترتون. این این جمله که تدریسش چجوری است؟ خب پس طبیعتاً ما چند تا بحث که من دارم در جلسه بعد. یه قسمت هاش این سوالی حضرت علی این چگونگی و مرجع تشخیصشه این یه بحث خاطرمون باشه. خب طبیعتاً فرای شمالی هست میکنم در واقع بگیم مرجع تشخیص که این مصادیق مختلف داره هر کدام باید صحبت بکنیم. یکی مهد حدود و قلمرو در واقع تشخی بگیم حفظ نظام قلمرو و مصادیقش دیگه این دوتا رو داشته باشیم دیگه چی بود فرمودید قلمرو دی که مرجع تشخیص میشه در واقع کم ضوابط بگیم. خب ما برای که اینا رو روشن کنیم این بحثایی که ملان داشتم در اون حکمشو در مورد بعضی از مسائل مربوط به اون بحث اختلال و بعضی از نکات شرعی اصلا با نگاه اصولی به ویژه ببینیم چجوری به تو مسادق فقهی بهش تمسک کردن از دلش چی در آوردن بعد ما ببینیم در است مثلا در قبل از تطبیق در مقام استنباد در واقع یه بحث زوابط تمسک به حفظ نظام در مرحله امتصال داریم که فرمای شما این بود یه بخشش اما همینه ما در واقع که زوابط و کیفیت تمسک به حفظ نظام رو در مرحله استنباد هم داریم که یه نگاه اصولی فقی می توانیم داشته باشیم این رو من بعد یه اشاراتی خواهم داد یعنی داشته در تحلیل های اصولی چگونه است؟ کجاها میشه خلاصه به حفظ نظام اختلال نظام تمثب کنیم در واقع مواردش چیه چگونه تمثب کنیم و این نگاه های کلی که خلاصه چگونه گی مواجهه با مفهوم اختلال نظام تحقق اختلال نظام شرایط تحقق اختلال نظام می داریم هم اختلال نظام هم حبس نظام اینا رو پس مروری مطالبه شما به اندازه که بنده بتونم اینجا هم فراموش نکنم تا دوستانی که تشریف دارن منابع زیادی است از جمهوری منبعی هم. جناب آقای افضلی پایان‌نامه دکتراشون بوده در مشهد فکر کنم دانشگاه فردوسی احتمالاً بعد در پژوهشگاه جناب استاد رشید اونجا چاپ شده مقال یه مقاله از اونم من خاطرم مقاله هم ایشون در بودن چاپ کرده بودن من حال اینا تحقیقات خودم بود یه مواردی هم بزرگواران طبیعتا مقاله ها کتاب های دیگه هم می توانیم داشته باشیم یه مقوله‌ای هم هست در واقع چون حفظ نظام یه جون مسلحته ما برگردیم مثلا به سیره ماملی علیه السلام خب یه کارهای کردن تحفظن علاق دین و حفظ دین یه اولویت های گذاشتن کلیت این بخشش اگه بخواد کامل کامل بحث بشه یه عبادش لزیل عنوان مثلا حفظ نظام و نظام و اینا نیست بلکه می در مباحث دیگه دنبال بشه به عنوان مثلا بحث تضاهم بخشی از اون زبایه ممکنه اونجا دنبال بشه و بخشی مربوط به خود تأسیس نظام وز... یه بخشی مربوط به وظایف حکومت اسلامی ولی اصل فرما شما ابعاد مهم داره که حالا اون مقدار که به توانیم انشالله جلسه بعد عرض میکنم اینجا دیگه الان بخواییم وارد چیم وقت میگیره به اجمالم خیلی نمیشه من تیدرا رو که برای از قلم نیافته اینا رو در نظر دارم که بعد انشالله عرض کنیم باز اگر فرمایش پس اصل اینکه مرجع تشخیص نیاز داریم درسته سلام نره کماجه های نجف سلامت باشید انشالله به این بحث حفظ نظام بعضی وقتا اونقدر دعای این حفظ رو گسترش دادن بعضی ها که حتی گفتن اگر حتی احکام اولیه یا سالویه رو هم خابلن در حفظه هم اشکان نداره به نظر ظلم های این موقع باید شاخصه ها و ذرفیت های بعضی کاملا دیده بشه سن اگر این قضیه باز بشه اهلست و هم به همین صرف رفتن برای خیلی یه تعبیری من از حضرت امام خواندم یادم نیست یه جایی دیدم شما وارد جلسه شدید نمیدونم قد شده بود وارد شدید یا از اول تشریف داشتید یه عبارتی از حضرت امام خواندم ناز به مخاطب مجلس استفدایی رو جواب داده بودن در واقع اجازه بعضی امور رو داده بودن که به مجلس سه مورد رو تفکیک کرده بودند، فرموده بودن که در مواردی که حفظ نظام آنچه که حفظ نظام بر اون متوقفه اونچی که خلاصه الان اگر عبارت رو دوباره پیدا کنم خدمش رو عرض کنم با پوزش سه مورد یکی عصر حرج بود یکی همین مقوله اه اه حفظ نظام بود و یه مورد دیگه ضرورت بود ایمان فرموده در این موارد با مثلا آن چه, چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد داخل پندس که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود شبیه آیه تبریزی بود که گفتن تظاهرات ازشان پرسید من مدن که فرمودن اگر شرکت نکنید موجب به تضعیف نظام شرکت در تظاهرات واجبه خب امام هم الان دارن اختیار میدن به مجلس که سه مورد بعدم هم هم میگن با تصریع به موقت بودن یکی اونجایی که حفظ نظام دخالت داره بعد توضیح که میدن میگن که فعل و ترکش موجب اختلال نظام میشه یعنی یه موقع ما میگیم حفظ نظام میگیم ای مساوی اختلال نظامه یه موقع میگیم حفظ نظام همه اینجا امام این حفظ نظام رو با اختلال نظام تردام یکی گرفتن گفتن آن در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترکان موجود به اختلال نظام می شود این مورد اول و آن چه ضرورت دارد که،, که چیه که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است ضرورت رو محیارش رو خلاصه فساد،, فساد آمیزی گرفتن مورد سوم آن چه فعل یا ترکان مستلزم حرجه پس بیونی این الان سه ست هم است کمتر از حفظ نظام هم دادن حفظ نظام خیلی دیگه حاده یه جایی اختلال نظام میاد خب میگن آقا مجلسیا حقی دارن که یه جایی حکمی جلب بکنن که خلاص یه جایی خلاص مخ... مخالفه مثلا بگیم احکام شهر یا قوانین باشه ولی تازه پایینتر از حفظ نظام هم اجازه دادن گفتم اونی که ضرورت داره که چیه؟ گفتن اگه نباشه فساد میاره خب فساد که لزوما اختلال آفری نیست اختلال آفری نیست این فساد که تو این جمله آمده ممکن جای دیگه مساوی اختلال باشه اینجا مثلا این فساده ظاهرش اینه که پایین تر از حفظ نظامه اختلال نظامه میگه حتی اگه اختلال نظام هم نشه ولی فساد آفری و ضرورت داره میگه نه فسادم نمیاره ولی چیه اختلال نظام هم نمیاره اما عصر و حرج میاره و آنچه فعل یا ترکان مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله حجز حتی این ولایت خود امام ها اگر امامی اجازه نده اونها لزوماً چون اختیاری ندارن امام به اونها اختیار داد که بعدان هم تغییر پیدا کرد دادن این معقوله رو به مجموعی تشخیص و آن پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت با کلاه مجلس شهر اسلامی با تصریب موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود مجازن در تصویر و اجراه آن را باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجراه از حدود مقرر تجاغذن نماید مجدم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعذیر شرعی می شود استفتاد جلد 3 صفحه 500 ظاهرش اینه که اونجایی که برای خلاف شهره یه میخواد مرتکب بشند چون منویتش خیلی سخت میگیره امام میگه توسط اکثریت تصریب بشه خب نکته مهم اینه که ببینید الان این مقوله ها رو یه جوری پشت سر هم آوردن و شدیدتر رو که اختلال نظامه اول رو بعد ضرورت بعدش کمتر از ضرورت هر عج توقع بندیه یه جوری خب حالا فرمایش شهر عزت و یه مقداری حاجهای صد رود احتمالا فرمودند یه آقای حسینی یه کمی به اینجا برمیگشت که محدودش چقدره خب ممکنه بگیم که برخی از این مفهومه مفهوم اختلال نظام و حفظ نظام استفاده کنه هر چیز رو به اون بچست ولی این مفهوم عرفی داره و متمایز از مفاهیم دیگم هست به هر چیزی ما نمیگیم اختلال نظام پس نیاز داریم معلف های اختلال نظام رو هم کار کنیم حالا در به صورت مقاله به صورت کتاب در ضمن اینجا عرض کنم این بحث اختلال نظام، تقویت نظام، اختدار نظام مفاهیم خیلی خوبی هستند برای مقاله پایان نامه ولی پیشنهادم اینه که اگر کسی این موضوعات کار کنه باید قشنگ بره استقرای خوبیتون چک بکنه نه فقط با لفظ بلکه یه مقدر مزاق فقی هم باید شیوه های فقی و استنباط فقی هم دستش بیا یه جایی ممکنه این تعابیر به کار نرفته باشه ولی از دل محتواها خیلی زیاد ممکنه در اگر اجازه بدید